شنوندگان رادیو آنلاین راه عبرشون و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی معصر مطالعات اقتصادی اولوی افغانستان، ایلسو، سازمان اجتماعی صفه و رادیو راه عبرشون و فصل دومی برنامه کسرتگرایی با افغانستان خوش آمده در این فصل با حضور کارشناسان و نقبگان علمی افغانستان کسرتگرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی میگید. چشمانداز این برنامه معرفی کارایی کسرتگرایی برای گذار از منازعات و حل چالش های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است. تا در برایندان در افغانستان مرفق و سلحامیست در فرطبی انبیشه های دست جاده. همراهان گرامی، انسان و دین دو همزدن نهاد دین و خدمت حیات انسانی پیشی ندارد، تازه ترین میدانی بیش از 95% درصد مردمان را از شرق تا غرب عالم مؤمن به خداوند نشان می نهد. از همین گذر دین و پیشینه دینباوری آدمیان را نیز می توان و بلندای عمر بشر برآورد بر برپایه این واقعیتهای حینی و مفروض است که تعریف انسان از موجود اندیشهگر ویا سیاستبرز و موجود دینورز موجهتر می نماید. و طرفداران بیشتری در میان جامعه شناسان و انسان شناسان می هماغوشی انسان و دین و نقش تحول آفرین و دیگر آن در جامعه بشری، از سوی و تعداد آوران ادیان و تعدد آنها و تغییر پذیری معرفت دینی در ظرف تکامل خرد و فرهنگ آدمیان از دیگر سو موضوع دو دین و سویه های آنها و یکی از پیشیده ترین حوضه های معرفت بشری مبدل سخته است. چیگونه در عین تکسر و تعدد ادیان و مذاهب فضای سازگاری میان ادیان و مذاهب را فراهم می کنم عبدالقاهر بیهشتی هستم در این فصل برنامه کسرانگروی افغانستان در خدمت رید. شما خواهم بود مهمان من در برنامه امروزی، روزی محترم بابا جان از علماء جرفنگر افغانستان و رئیس مرکز تحقاتی اقره هست جناب سعیقانیسی صحیح خوش آمدید به برنامه. شکر. سلامت خدمت گرامی در این برنامه رابطه قرآن کریم با کسرتگرایی را به بررسی می‌گیریم و کارایی آن را در افغانستان باستا خواهیم داد. جناب سعیقانیسی صحیح، کسرتگرایی از نظر شما چیست؟ و تعریف شما از کسرتگرایی چیست؟ تر... کسرتگرایی و چیگونه تعریف می از شما ده برنامه های رو دیگه شما سپوکو فکروم و در پس به در سوال شما دیرهیم که که کروی دینی چی را میگه؟ که ست کروی دینی که در سال های جی ما سر صا باي نیل یقطاوا روشن کرو جنون شده و آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ معقی دغوقل که تمدن هوایی ماوسی بتری در مقابل باورهای دینی انسان‌های معاصر صورت می گیره اینجا همین خود تعامل و عدم خوشایند و خالزی یاد که هم با قدیده های جدید برامی کسرتگرای دینی یاد میکنند از جیدی های برس اینجا را بیرامونی منظوری مدروحه با شما سخن خواهد شکر جناب صدیقانی صدیق بیاین به توبت از اینجا آغاز کنیم که میزداخای اصلی کسرتگرای دینی در قرآن کریم که یکی از آخری دوبه آسمانی هست، بیشتر در کدام آیا سوره ها، برجسته شده و چی رو به کثبگرایی بردختش رو دفعانی کریم؟ حیلی هستم، سوال خوب و ارزشمند و ارزنده ای جامعی موثلی کشورهای رو به انکشاف هست. بران میگه که اینالذین آمنو والذین حادو من نصار و سابین من الله و والیوم الاخر، و عمل صالحا فدر مجرمان دارد به منظور کنند علیه منظور در آیدی های روشن فکران دینی و تعلیلگرانی مسایر کسراتگرانی دینی دو دیدگاهی که وجود دارد یک دیدگاه این است که قرون به عنوان مستر اخصی آخات عملی انسانی در دین اسلام ای یک کتاب کسرتگراه هست و اسلام کسرت در هست دلوحی در دلوحی در و امین منور برمان یک دینی میتونه با پدیده های انسانی پدیده بشری تعمل کنه و کنار رو بایان. و دیگری هم وجود داره مبدی بر که اسلام به عنوان یک دین ارزش و تداشته های دارد داره دارند و غیر قابل تعامل با قدده های محاصر سیاسی اقتصادی است. کسانی که این ترفدار نظر و میگن که قرآن و دین اسلام تطابق با ارزش های جامعه و کریم روزی هست و میتونه تا ملو با فضیده های جدید استعداد کل میکنن که فرحان میفرمایه که کسانی که ایمان هاولدن و کسانی که حود شدن کسانی که ثواب رو شدن و کسانی که پیروانی دسو و هی او ستورا فرستون بودن از جمله کسانی اینها که من به روزی آخرت داشته باشند و به خدا داشته باشند و عمل صالح داشته باشند اینا همراهشون اگر داره ثواب داره در نزد پروردگار و ترس و خاوی بر اینها نیست و ایشان نباید اندورن باشند ولی این را که فیدنانی سویریتیان هم اگر اعمالی نیگ داشته باشند و خودالای ایمان داشته باشند که رسول در اینجا زکر نشد و روز آخرت ایمان داشته باشند و اعمال شایسته ای را از خود نشان بدن این ها اگر دارن و هیچی فروردی گارشان و خوف من ایمان نیست بعضی اکثریتی کسانی که از جسد باز مکتب دوم نظریه دوم هست میگه اینو باید ایمان بیارن در غیر ایمان اول از درستی درست نیست هما یک تعداد از دانشمندا میگه که متن هایت که پیروان ساعد ادیان و مردمان دیگر ک اینا ستار پکسان در ادیان سماوی نیست انا هم می که عمل صالحه بکنن و زندگیشان را پیش و فروردگار بهشان فجر میده و در حدقه کردارشان هستن و اینا باید نباید حرص داشته باشن اینا استدال بکنن به تعمیل امین آیتی که من قسمتتان خاندم که قیانبر ای اسلام هم در زمان حیات خودش با همسایه های کامبر یهود، زردش و نصورت باید که داشته یعنی از دین اسلام یک تعامل بسیار زیاد خوب داشته و من حیث کننده به قرآن و به کتاب آسفانی مسلمان ها خیلی هم نرم و خیلی هم خوب بوده قصه ما شما نمونا هایی است. قصه هایی است که باهم سایه ها کسانی که بولایش جنگری و نصافات را منداختند چیزی چیگون را به خود میکرد و, و, و, و یکی از گویاتی که صورت کرده میگه پیانبر که بسیار مشهور همه است در جامی تسندان و تشاری افغانستان و سایر جهانی معتبر هستید و میگه که پیامبر وحده که داخل مکمه شد سپاهش که داخل مکمه شدن صدای هر جمله ایلاناتی که صورت میگیرد یکی ایلانات همی بود که کسی که در خانه ابو سوپیان هم برد در در حالی که خودی ابو سوپیان هنوز با پیامبر کنار نیامده آمده بود و بدین اسلام در احرام نداشت و در حالی یعنی به کسی که بیرون چوکاتی اقایدی دینی پیانبر و اصحابش بود پیانبر با او تعمل و کرد و میگفت که کسی که در خانه حسابتان هم برد او در معنای این است که دین تعمل رو با اه اه افرادی که جامعه کسانی که مخالف دینم هستند و قایدی های دین قبول انوز ندارند و در ادیان دیگر که دی هستند دین میتونه با اونها کنار را و با برخورد ها پرخور داشته باشه که پاسخ بیشتر دراز نشده باشه بخش دومی کسانی که میگن دین اسلام یا قرآنی که مسدر دین است و کتابی کتاب دین هست ایره در سوال بعدی دانیا بخش بعدی انشاءالله می پردازم به این مورد اما در ادامه صحبتهای شما فلسفه تعدد ادیان و پیامبران چی هست؟ چرا به با یک بارگی یک کتاب آسمانی و یک پیامبر برای هدایت جامعی نشری نازل نشده است؟ تعدد ادیان و تعدد پیامبران در آثار مختلف و در بنانهای مختلیف با کتاب های مختلف اصل خلصفیش در چی است؟ و چی آموزه را برای جامعه بشری این روزی دارن بشتی سوالای شما نام خواب نیستید دلیمون کشاه هست مره کشاه هست من تشکر میکنم بزیمی که این سوالا شما کدید و برای انتظارش بودم که ای بس باید مدرح شد چرا در زمان‌های مختلف ادیان مختلف بوجود وجود آمدن اروپا استلون فاصله شده در سری خوان کتاب‌های مختلف در زمان‌های مختلف دیگر کنش در آن هست شما می که در کشور وقتی حکومت وجود می یا, یا قانون اساسی می دوستا باشا امین حکومت اگر است، اگر شاهی است، اگر پیترولی هست اگر آروس اگر حکومت های محاصل که در دنیا ایجاد شده هست این قوانین اساسی خود را هر ده سال هر بیس سال هر 5 سال به سن سال سال هر این که در قوانین اساسی خودشان شان و مندهها و بجالسی دارند بری نهی را در قانون اساسی چون بخاطر اینکه یکی چیزهایی که در سی سال چر سال پیش مروان بود و در قابعه اساسی ذکر شده بود امروز و فردیده ها نمیتانه که پاسخگوی نیازمندی های یک جمعی نشری باشند همینطور کلاس میکنیم که بسیار مطابقتم داره این موضوع ها ادیان کنم در یک زمانی یک دین سحیرفه کتابی از طرف خدا برای انسان‌ها سنها روان میشه در یک قیمبر تفلیق و تروید میشه 100 سال بعد، 200 سال بعد، باید هرم بعد، هزار سال بعد این سال با جدید، با جامعه جدید، با تفکرگوری جدید او میر بو بو و میره وارد اندام میتونه و جامعه نمیتونه که با این همون کتاب که در گذاشته نازل شده بود خود را سجان ببخشه و اموری روز مرد جربه پیش مرد به ای اساس نیاز است که خانون جدید کتاب جدید و صحیفه جدید از طرف خدا پیام جدید روجود که تو رهگشا و مشکلگشای عقصی موزل و عقصی هم عقصر باشه که بطاره مشکلاتی مردم را از دیازی کهانین از دیازی پرهنگ و از دیازی اجتماع ا بتون بکنم. معنی خاطر در ادوار مختلف ادیان مختلف در جامعه بشری ارزی انجام کرده. یک یعنی دین منسوخ شده و جایش دینی دیگری و کتاب دیگری قرار پیدا. جناب قرعه صیغانیس می‌پردازیم به بخش دومی دو های شما که شما مطرح کردین در خصوص قبلی اسلام از یک لحاظ از جای تعداد از باورمندان به نظریه یا دیدگاه که یک دین منحصر به خود هست و های خود دارد و کمتر سازگاره دارد با ادیان دیگه اصل دلیل طرفداران این دیدگاه چی هست و فلسفیشان چی هست در حال که پیامبر با همسایه ها و پیروان سایر ادیان ایمان های رسمی داشتند و سنت پیامبر یا رفتار پیامبر به ایمان گروه گوی تحبران جامعه استامینی و انسانی امروزی مطرح می در حقیقت با پیروان عدیان مختلف و حتی آفران رفتار مسالمت آمیز و مداراگونه داشته پس چیگونه اینا فلسفه دیدگاه از این طرف نظریه چی هست؟ چرا اینا مطرح می که اسلام به یک دین منحصیر به خود هست و زشای خود داره و نمی سازگاری که داشته باشه با سایر عدیان؟ بعضی از دوستمی که ایرانی هم انجام دیدی دینی را بگویم یا که این سطح نام غلبت و خوابت آموزش و دیگر پدیده ها و می گفتند که اگر کپای تان نظر آن مطرح می کردند باز ما این می که شما دینا تنگ و تاریک ساختید دیگر نباید انسان دینه قطعو را بس را زباز و ترخدارای دیگر میگفتنی اگر قطعو را ما ساختیم و را شمال زبال ساختیم هرچیه ده ما باید ازیان زاختیم یعنی اسلام چیز از موسیقی هست و فلانه سوید لرازو دیشم یعنی بود خدمت ده ناسو اما هستی جوابی عزیز سوال اینا هم استدلاقات خودت دارن کسانی که میگن انه باید اسلام رفت طابل تعامل ران اسلام بدی دفاعی معاصل اجتماعی سیاسی و از طایری چرا میگن خدا در قرآن گفته که این الدین اندقاء الاسلام دین ارزنده و دین کامل و دین قابل قبول بهش خدا اسلام است ومای احتره غیر از اسلامی دینام فلا یقبا لمن کسی غیر از اسلام دینام از خدا قبول نیست که در و و در حصول و پرون دنیا و سایریتیان هم که دیدگاه ها وجود داشته آ... شما بیدن که شرایط سیاسی امروزی کشور کسوری ما هم گویایی یک چنین حالتی هست که دیگن مفضوع تحصیل زنها هست مفضوع آزادی رسانه ها هست روحی حقوقی دایری انسانهای است ساکن یک کشور است. این هم یک مثال بسیار زیاد خوب است. کشور ما در ارزی همین باعث کشور شما مطرح کردیم که نادرات دوونه میшава تعداد هم از دین همان دینی را مطرح میکنند که در گذاشته ها اه مثلا روحیت بوده و اتداری هم میگن نی باید کسردگرایی وجود داشته باشه و تحمل وجود داشته باشه و تحمول وجود داشته باشد. هر کدام این را قایدی ها و خود را دارد ام یک قایدی را مطرح <تصیح> میکنند <تص و همطور لائلی از او را بیان میکنند و در راستای پرخورت ها جریان تاریخ تاریخ گذشته و قرد اول ایسام پرخورت ها یک سر دوانایی داشته مثلا بعدی از کفار مکلق و دادن جلده و بعدی کفار ها میخواده که برزیم جاز خایل مشده بوده و مایل شده در داره خستامیسی که پیشتر و ابو صوفیان ما شما یک مثال دادیم که کسانی که در خونه ابو صوفیان میرفتن در عمل میبودن یک شریع دلائل خود را دارن هر جناعی که یک ازدعای در راستای دین میکنن دلائل خود را هم مطرح میکنن که من فکر میکنم شاید مطرح کردن و تشریع تمامی از این برشا در نیم ساعته برنامه امروزی ما شما نباشن تشکر صحیحانه سپاس در مقابله چنین روایت هایی که وجود داره اصل دفتر عملی پیامبر که به عنوان سنت در جامعه اسلامی مطرح هست که با سایر پیروان سایر ادیان و بنی صالح بوده و عملا نشان دهنده سازگاری اسلام با سایر ادیان هست ددگاه شما به این موجود. چی هستین؟ بیشتر شما طرفدار دار دیدگاه ددگاه هستین؟ آیا تعریف موسط از اسلام داشته باشین؟ یعنی اسلام یک بین کسترگره هست؟ یا تعریف مزیق از اسلام داشته باشین؟ و اسلام از این حسید های خودش و خلصفه سازگاری اسلام با سایر ادیان رفت کنیم شما طرفدار کدام دیدگاه ددگاه هستین؟ و دلیل شما چی هست؟ بسیار سوال خوب مطرح کردن بشتر ولی قبل از فاسخ سوال شما باید اغاز بکنم که کسانی که میشنن یک موضوع رو به تحلیل و ارزیابی ها و و بنایز کارسناز یک موضوع ارزیابی اندومه و حرف میدنن باید نخوز خودشان احساسی بیترافی بکنن و بیتراف باشن تا که یک طرف این قجر را تایید بکنند عدالت به صورت درستش حکم شده بتانه درست از سری جزی سوال شما که بودیم که په انبر چیگونه با پیروان سایر ادیان و محیطی بیرامونی خودش با انسانها چیگونه برخورد کرده بسار ازش مانداز ده پیغمبر منطوره که یک پیغمبر از و در دین هم ازش بانوان رحمته للعالمین دیوات شده و از جوامی اسلامی امروز نیاز دارند که تشویری نظرد بکنند. و یک تمرکز بخورند بر اعمال بهبر. ببر و کسانی که اسیر هستند و بندی هستند به های ریی آنها را از تعلیم در بینی مسلمان ها می چقدر این مهم است چقدر شمند است؟ ان میگه شما در صورت ها شده میدانیم که، مصنوعات و صورت اصحاب صفر تشکیل میشه و در در دانش و بیندیشی اجتماعی بسیار زیاد اهمیت پایل میشه. کسانی از دامسای عایب پرندار، واروش چیز می‌داشت، کسخکات می‌داشت، جنگلی مخصوص می‌گیم. قرص‌های پرندار می‌داشت. سرانی بی تعلیم و بی تربیمی سای آقای پیانبر بریدی که دوین کرده باشه با پیامبر اسلام بریدی یعنی که وقت بوشایی کرده باشه داری که چرا این مردم زیاد دوست داره اما پیانبر رو چیز نمیگرد باش نمیگرد ای نمیگر. از این نقطه که میگن که اومد اسلامی مسخه شده ازداد ادعا دارن که ما مسخه شدیم دیگر پرام خیلی جایی داره اگر شما باید از اجتماعی ما یاکنین تاوینی را بگوین، یا تاوین نکنین سرش کس، اگر فادنام دزیند، یک صفحه فیسبوک بده چه بگوی نه، دیشکنین نیم دواد کنین سرش، چی بالای رابر بالای شما خواهد آورد. و خشتمو کتاس هایی که به نمایندگی از این میکنن و نمایندگی از اسلام و از کریم و از رسالت پیامبر میکنن، چی؟ اینکاس نشان خواهد دادن در اینجا هم داریس دینی هست و هم علماء که اقتداد علماء اکی روشند فکر خود گیرن و هستن روشن فکر آقای سروش و اینا تبیرهای بسیار زیاد ارزشمندی را در ای راستا ای این راستات دارن که من توصیم به جوانهایی هستن که این آثار ارزشمندی از این دانشمندان معاصلی اسلام را مطالعه بکنن تا هم خودشان در یک فضای بلندی میزندگی بکنند و هم بتانند دیگرها روشنگری بکنند برای جوابی بشنید مشکل طریقانیست با توادیو به زمینه بحثای مون شما پیش این داعی بحثای بیشتر شهرانده افغانستان خواهد بود مدارای پیامبر با مخالفانشان چی آموزه را برای شهربنده افلانستان و مسلمانه افلانستان بیان می کنید؟ مدارت این با مخالفانشان نمایت جانگری به اخلاق عظیم است که در پرانو مدوین و کسانی که خود را پیروی اومی ایران و خود را پیروی دین اسلام می برای نهایی را یک روزانه در علاوه ازی که خواهی خواستیت های و حسائی سوی چگیرش خود را کنم و پشت میگذاره در برای مردم یک مقدار حالایی که سیرتیان حضرت توجه بکنند، یک مقدار دار برن قرقات و سکرات رو دیده کسی که برای اون کار میکنند. او رو متعالیه میکنند و از و عملکردهای خود رو بدن. نه عمیدتر می این راستان صحبت ولی پرنامه فرصتش دست اگر دیگه داشتیم باز ما سر عزیز صحبت بکنیم. و در دین ما شما خالکوزیم و دلاغ دمشه که دشمن خدا هست در جامعه ما دروت بسیار زیاد حقاقیم هست هر چیزی که بیدید فیسدیه چیزایی که ما با او سر می کنیم هر سرش دروت و ما در محارف خود حتی دروت را جای گزین کردیم یکیلی از چیزایی در تاریخ ما آمده که در تاریخ سی و سی موقع دیگر که دروت بوده ولی ما اوگر برای مردم نوشت اکردیم برای اولاد خود تعلیم دادیم که این طوره اینه در وجود داره در جامعی مجموعیت باید شده در این موضوعات که بسیار که آدم بیشتونه و موضوعاتی مشخص کنیده اگر در این آدم سرش باز بکنه که در جوانایی خوبی را داشته باشا و نسید بایدی باید آگاهی از سیدنگی را سردو و آمینست که دروب بیگر بیگر جوانا حرام بیگر آمینست ای درسی سیوستا در سیش درسی همه و پرهنگی ما من خیمیر داشته باشا باید آس من می کنم بروگیوشی و شبکیشی ما که همیشه خدمت کردن به مردم یک بولستان همیشه روشنگری کردید و همیشه دوزات مطالبی اسلامی رقوقی لبری مردم رساندین اگر شدت بتاند که یک مقدار در بوشت تهایی و در جزیات آدم داخل شد بود بتاند بسیار به شکل همین آنه و سر موضوعات بحث دکند تا اینکه که شکر سایانیس که انشالله در های. فرصتهای بعدی و در این برنامه های مفصوص انشالله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. با بر ساختار اجتماعی و دینی بینی و مذهبی افغانستان که ما شما نظر داشته باشیم به جامعه افغانستان مناظراتی طولانی که در این پیشورت وجود داره دستانه هنوز از سالیان متناندی به این طرف وجود داشته و هنوز هم ما به اساسی اصاسی دست نیاد و این مسئول اجتماعی که هدف نهایی و آرزو و آرمان اکثریت شهروندان افغانستان از دست پیدا کردون به چی میزان شما مناظرات در افغانستان ریشش را دینی و مصحبی میدانیم و چیگونه می که در عین تعدد مذاهب ما در این تعدد وقتده باوجود بیاریم و از منازات جلوگیری کنیم به سر بود ما، کار بعد استی ما رو ما... اه... است نکنم یه خود ریاحجی بلا گفت که فقط دروغ خیلی وقتاستا که ما خودی ما دروغ نگویم خیلی هست که جامعه ما بخودش دروغ نگویم همو بای دومی همو بعثی بزنشته ما ما دروغ نگویم دیده هارا بسراتی واقعیش بسنجیم و عمل کنیم خیلی مشکلات را افتر ما کسانی که انگوز موضوعی معاجرات بسیار زیاد مرد را هست در چون ها تسکلی ها کتاها در تمام ازی ها ها که آدم مطالعه این داره. ما از دولتی که یا یا ما حتی ما ما من با صداقت او، سیاسد مادرانو می‌اردو، ولی پیشو است. ما دو می سوالی، تو شما را تو دادم، من می‌خوام که شما کردین یک کمک از بشمارا که در رابطه با سرویس اردو مذهب بود، اگر شما یک کمک دیگه هم بکنید، سوال اساسی اینجاست که با توجه به ساختار اجتماعی و مذهبی در افغانستان وجود دارد تعدد مذاهب در افغانستان هست مثل اهل سنت و اهل و, و همتون در سنن با تعدد مذاهب وجود دارد آیا این تعدد مذاهب در افغانستان موجود منازعه شده و اگر شده چه اندازه منازعه در افغانستان بشی دینی مذهبی داشته کس محایدی های خودش را دارد و ثابت میکنون می که تعددت مذایب بایس جنجال ها بی موینی ملدمانی سرزمینی افغانستان نشده اما افغان ها جنگانده شدن افغان ها جنگانده شدن بین جنگان حیثی افزاد جنگی استفاده شدن جنگ ها بی جامعی جهانی را اینا تمثیل کردند داخل خود کشورشان در اون صورت باز، در اون حالت باز ادقا از دین و مذهب به عنوان افزاری چنگی استفاده کردند و به عنوان مذهب کسی را به عنوان مخالفی های دینی خودشان مذهبی دید در در حالی که در حصول مذهب شما ببینید که ایما مذهب شب شا... در خود مذاهب چیزی نیست مثلا مثلا خود امام آدم میگه که برای شهردارش میگه که شما هر چی که ما گفتم ما که درست است شما برین اختلاف مذاهب برای اظهار الحقایق اختلاف مذاهب برای واژه‌ی ثبنی از حقایق است دیگر دین مذهب قوم نشو و بودم که ادعای بود دعوه‌ که و متأسفانه عزیز اعاده کردم و مردم را چندان ما بی‌موارث نبودیشه پس جناب و در عین که ما تعدد مذاهب داریم و همچنان پیروان مذاهب مختلف در ژئوگرافی افغانستان زندگی میکنیم چگونه ما وحدت در عین کسرت وجود بیاریم که فیروان مذاهب مختلف دیگر ابزار جنگی واقع نشد و ما شما از منازعات بیرون بیاییم و به طرف صلح اشتماعی حرکت بسیار طوال رو بود من یک باسر خیلی باسر اندوانم شاید باشد دیگران و موضوعی مواصلت میرن که در احصر از در احصر حاضر چی کنن که گذاشته اکتبا کردن من میکنم نی برای سپریندم، چل سال پیش مردم همونستان چی تو زندگی من مثلا یک جای هره ما بود که در در ما شش جمع بود، شش جمع پنج از هر بود و یک جم یک جمعش از هر بود ما چنان رابطه سمیم و هم دوستانه با یک دامه و داشتیم که چقدر ما بودیم چقدر دوستانه بودیم یعنی در هر خیر و شر ما ما با هم شریک بودیم و نزدیک بودیم و اینا ولی متاسفانه جنگهای داخلی ما را به جایی کشند که امول سوالینه که ما براتم خدمتان ارز میکنم باعث شد جنگ جنگها که ما مردم تسلم برن خانه های مردم تشریع چه و مردم تشریع بین خانه های مردم تسلم چه رو چه کی ما باید بل اصل اسلام باریم همه که مسلمان هستیم همه که کلیفه می کنیم همه که خدا را قبول داریم همه که یک پیغمبر قبول داریم دو پیغمبر نداریم ما یک پیغمبر داریم یک کتاب آسمانی داریم یک تاریف داریم لما بمقا دخوانهای ما قرآن کریم موجود داره و قرآن کریم به نحج و برنامه زندگی همه ای ماست چی تشانی ما باید هم باشه ما باید از گذاشته توبه بکنیم شما یک من که ما دیگر دیگری بسیار زیاد ارزشمند هم هم از دینی و هم از لحاظی روانشناسی که ما تانوز توبه بسی امو بسرانی که یک توبه مشکل حل نشده بود، ما ما هزاران هزار انسان کشتن، سنتی را کشتن، شیارا کشتن، مکتب کشتن، ولارا کشتن، همه کس کشته شد در این دنیا، کسانی کشته کس شدند، شدن. ما باید اول بیع بیع نصور ما باید یک توضیح نزولی بدم، ما مو باید بگیم که ما چی هیچ گروهی از ما نمی‌گه که ما چی کردیم ما تا یک سیاست مدارکی دستش می‌کنیم از آن انسانی اموностوم. ملاواز هست نایوکتیم که او گفته ما شکلیم ایشتیبا کنم ماز دو نفره کشتیم زیاد نکشتیم امو کسی که ده هزار دو هزار نفره کشت امو گوه اکمه یاد نفره کشتیم یعنی ما با امو هر خود صور که ده امو هر جوالات صور هستیم که دل و متاسفانه فکر بینداریم که ما باردار ما محنوز با اونو که دل در خدای این خود توبه نکردیم که ما یکچنین اشتماعاتی از ما سرزده انوزم ما قرمانان از و جامعه و دین و این اساس، اینی برای مردم این توزیم هسته که کسانی که در که مردم اولو در اندازی ملاوث هست دستشان در غیر قانونی و خلاف قانون هست، اینا سار باگی مورینی دولتی مورینی دولتی کسانی که خدا مین که مو مو کردی در کل جناب و موضوعی که قابل بحث است، اینجا مثلا در قرآن کریم مطرح شده که شعب و قبائل و قبیله و قوم هم برای معرفت در جامعه انسانی خلق کرده و این موضوعات همه در راستای معرفت بین جامعه انسانی است. یعنی به نظر شما یا ددگاه اسلام نسبت به گرایی قومی یک ددگاه مثبت هست و دیدگاه موسته است یا ددگاه است هست آیا, آیا در اسلام منظور نیست که برتری قومی مقبله این مطرح هست یا همه قوم و قبیله صرف برای معرفت جوابه انسانی هست و آنچه که در نزد خلالان برتری دارد تقوی و پرهیزگاری هست میخوند به این مورد داشته باش. دیشار دیدگاه خوب مطرح کرده ناجه شوهرو و خانواده‌اش لتهان خدا ما را مختلف خلق کرده. اول همین بحث بسیار زیاد جالب بس. ورسد. دیو روانی از دیو زیرمانی شنو از دیو دینی، از دیون خلقتی فلکانی خدا یکی یکر زن و فردا، یکر مرد و فردا. ما شما می‌بینید که یکی سی و کوس و فردا، یکر ستف و کوس خدا اینسان آرابا چوز کنین شکل پیو پا خالکرده این تفاوتوارا خودش آل کرده که را گیره که برداری نا نا اینکی کسی از کسی برتر باشه خدا تل عربی نالا لاجمی خدا اسلام بری ایس لوگ میک عربی براجمی ندارا لو خدا عربی نالا لاجمی ولو للا افده و للاسواد سفید فوز وانا سه گذشته بار بار بار بزرگ و هر صایری انوایی انسان‌هایی که در ایکلیزیم این زندگی میکنند هیچ کدام با از, از یا برتری ندارد. ایلا بتفو، مگر با تفو پر ازگری. چیست تفو؟ تفو پر ازگری نمایش مچی مچی تبر بگوییم. تفو پر ازگری ایوارات از دوستانی بیشتر بلند منزل است. یا تفو پر ازگری ایوارات از استفاده نکردن است که دولتی هست ما انوز به این مراکز و به با این تین بحثات جنابی بیشتی استفاده ما لیلی از کمی از راڈیوها و نشرات ما اخبار ما اثر این چیزها تمرخواستا میتونم کنمارا حیل خیل نصیب بکنم که ما همی بحث آخواست کردیم ما انوز از که این چیزها نای در آشه ها و در گله ها در در در ها در و در گودال تنبختی خوب متاسفانه خبر می‌بریم فقط فقط تقوا و پرهیزگاری میاری برتر بودن از دین اسلام نگنید هر کس که تقوا کرد هر کرد که ما نمو می بینند کسانی که هستن مردم قدرم میکنن را یک تا سی چهار تا ما تا خدمت میشن ما نمیخایم بگیم ولی اگر ما اون شکل شویم در ارزش موا سایمان دل ماصود قائنسه تشکر جان سایقانی س پس چگونه می که از کسرتگرایی به حیص استوانه وحدت قومی در افغانستان استفاده کنیم و مناظره که با عنوان پیمان قوم و سنت و ویات زبان مطرح دارند مناظره ها کنیم و کسرتگرایی به عنوان استوانه اصلی رفایش اجتماعی جامعه جامع متاثر می شما چیست؟ ما خیلی از او ما برای شما برای اندیشمندان اگر کسانی که در داخل افغانستان هستند و کسانی که در بیرون افغانستان هستند قیر است اونجا یک مسار ریبو وصاحت است متوجهم ریبو وصاحت نشم یک مسار من بوخورا رو بوخورا و زندگی خودا تنظیم بکنند و مو رسالتی است ایشان که مرا در کنید کشویی در جونگی بشاری هاست ورم اگر یک و هم گردی هم بیاییم و دیتر ایت بتونیم و تیر ابرسانیم ایلو ابرسانیم موامده تیل این در عرضی این سالها داره را پر مردم پرسانیم ما میتونیم که برای سال مارید فهم و ویدیویی که در ذهن ما هست برو برسیم و بتانیم برادر وارد سایر ملل دنیا با هم زندگی بکنیم یکی دیگه خود بادر کنیم که در افغانستان هستن اونا را بکنیم بی ایستیدون را دارن دارن داره و افغانستان حضور شما در برنامه امروزی و از صحبتهای اسرسی که پیرامون موضوع کسرتگرایی و قرآن داشتیم و رابطه کسرتگرایی دینی را با جامعه امروزی مطبخ کردیم همچنان کارایی کسرتگرایی دینی رو برای حل منابضات در رو با هم بحث گرفتیم از همراهی و همداری شما و همچنان حضور ارنشمند شما یک جمع سپاس شنمندگان بیرامی پایان یکی دیگر از برنامه های کسرتگرای و افغانستان بسیدیم. ما در محسیم طالعات اقصاری و افغانستان تیلسو و همچنان رادیو راه ابریشم و سازمان اجتماعی سفید و کسرتی دیدگاه ها باورمندیم. آنچه که کارشناسان، اندیشمندان و علما در این سلسله مباحث مطرح می‌کنند، دیدگاه کارشناسان و دانشمندان هستند، اما با احترام و استدید دوها و باورمندی به با کثرت دوها اندیشه هایشان را بدون سانسور با توجه و اصل احترام با آزادی بیان و نشر میساریم تا زوایای پنهان و تاریک جامعه بشری افغانستان بازشناس شود و از این طریق میتوانیم در راستای حل منازعات و چالش های فرهنگی در افغانستان های اساسی را برداریم تا برنامه ای باید شما را به خدا یک تامی سکارا بیتولید دنب سیغانی شد یک جانسی پاس بازم از